فصل ده دهم. یقین بدانید که هر که از در به آغل گوسفندان وارد نشود بلکه از راه دیگری بالا برود او دزد و راهزن است اما کسی که از در وارد شود شبان گوسفندان است دربان در را برای او باز می کند و گوسفندان صدایش را میشنوند او گوسفندان خود را به نام میخواند و آنان را بیرون میبرد وقتی گوسفندان خود را بیرون میبرد خودش در جلوی آنها حرکت می کند و گوسفندان به دنبالش میروند زیرا صدای او را میشنناند. به دنبال غریبه نمیروند بلکه از او میگریزند، زیرا صدای قریبه ها را نمیشناسند. عیسی این مثل را برای ایشان آورد ولی آنها مقصود او را نفهمیدند. پس عیسی بار دیگر به با آنها گفت یقین بدانید که من برای گوسفندان در هستم همه کسانی که قبل از من آمدند دزد و راهزن بودند و گوسفندان به صدای آنان گوش ندادند من در هستم هر که به وسیله من وارد شود نجات می‌یابد و به داخل و خارج می‌رود و علوفه پیدا می‌کند دزد می‌آید تا بدزدد بکشد و نابود سازد من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند من شبان نیکو هستم شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا میسازد اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان به او تعلق ندارند وقتی بیند که گرد میآید گوسفندان را میگذارد و فرار میکند آنگاه گرد به گله حمله میکند و گوسفندان را پراکنده میسازد او می‌گوید چون مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. من شبان نیکو هستم. من گوسفندان خود را می‌شناسم و آنها هم مرا می همانطوری طوری که پدر مرا می‌شناسد، من هم پدر را می‌شناسم و جان خود را در راه گوسفندان فدا میسازم. من گوسفندان دیگری هم دارم که از این گله نیستند. باید آنها را نیز بیاورم. آنها صدای مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد. پدرم مرا دوست دارد زیرا من جان خود را فدا می کنم تا آن را بار دیگر باز یابم. هیچ کس جان مرا از من نمی دیرد. من به میل خود آن را فدا می کنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم آن را باز به دست آورم. پدر این دستور را به من داده است. به خاطر این سخنان بار دیگر در بین یهودیان دو دستگی به وجود آمد. بسیاری از آنان می او دیو دارد و دیوانه است. چرا به سخنان او گوش می دهید؟ دیگران گفتند کسی که دیو دارد نمی تواند این سخن بگوید. آیا دیو می تواند چشمان کور را باز نماید؟ وقتی عید تقدیس در اورشلیم فرا رسید زمستان بود و عیسی در صحن معبد، و در داخل رواق سلیمان قدم میزد. یهودیان در اطراف او گرد آمدند و از او پرسیدن، تا کی ما را در بی تکلیفی نگاه می‌داری؟ اگر مسیح هستی آشکارا بگو. ایسا گفت من به شما گفتم، اما شما باور نمی کنید، کارهایی که به نام پدر انجام می بر من شهادت می دهن. اما شما چون گوسفندان من نیستید، ایمان نمیآورید. گوسفندان من صدای مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و آنها به دنبال من میآیند من با آنها حیات جاودان میبخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچکس نمیتواند آنها را از دست من بگیرد پدری که آنان را به من بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچکس نمیتواند آنها را از دست پدر من بگیرد من و پدر یک هستیم بار دیگر یهودیان سنگ برداشتن تا او را سنگسار کنند. ایسابان بانها گفت: من از جانب پدر کارهای نیک بسیاری در برابر شما انجام دادم. به خاطر کدام یکی از آنها مرا سنگسار می کنید. یهودیان در جواب گفتند برای کارهای نیک نیست که می خواهیم تو را سنگسار کنیم بلکه به خاطر کفر تو است. تو یک انسان هستی ادعای می میکن. ایسا در جواب گفت مگر در شریعت شما نوشته نشده است که شما خدایان هستید. اگر خدا کسانی را که کلام او را دریافت کردن خدایان خوانده است و ما می دانیم که کلام خدا هرگز باطل نمی شود، پچه را به من که پدر مرا برگزیده و به جهان فرستاده است نسبت کفر می دهید. وقتی می گویم پسر خدا هستم، اگر من کارهای پدر را به جا نمی آورم به من ایمان نیاورید، و اما اگر کارهای او را انجام میدام حتی اگر به من ایمان نمیآورید به کارهای من ایمان میآورید تا بدانید و مطمئن شوید که پدر در من است و من در او پس بار دیگر آنها میخواستند او را دستگیر کنند اما از نظر ایشان دور شد. باز ایسا از رود اردن گذشته به جایی که یحیی قبلا تعمید میداد رفت و در آنجا ماند. بسیاری از مردم پیش او آمدند و گفتند یحیی هیچ ای نکرد اما آنچه او درباره این مرد گفت راست بود در آنجا بسیاری به عیسی گرویدند